خواه که با تا هم شما ما <متحكز> یه تو اگه میخوام یه داشی خدا همیشه خدای جا باشیم با هم درگیر شیم و صدا بریم تو دیوار بره بگا ماشین یه تون اگه میخوام ساعته بگه فقط وقت اینجا ساعته بگم قلب رفیق جان واسطه میگذرم یه ای ایران بابتت یه تورگی میخوام اق بده به من همشه تا وقتی حق با بقیه است یکی که یکی دیگه ما نگیرش دوباره قدم نزنم تع ولی است یکی که زدم بزنه هر هرجا میره منم ببره حرفم مرفشه حرف اون حرف منه حالا چپم م چقدر چپشر چقدره یه تورگی میرسه ما با هم سگ بس کنیم زیر چش ماه برسم خدمتش تا میده ایندا بگم تو جیبه تاداددا دادا بش بگم بعد خوبت با من به هیچ جا هم نرسی دوست دارم تا لفظ میاد ببینه اوکی okay دادم زیر پله بگی زیر پونس با هم دادا خیلی لازمش دارم یکی که بام رفیق باشه لا اشکالم کمرنگ کم رنگ نشه تا گرفتارم تونشو میدم تا باشه زندانم یه تو رگی میرسه امنم که تو جمم حتی همیشه یه نفرم یکی که تو وقلش بیمهی بدنم بعد شبخات کسیری ششو میزن نانامی کشم نگه تعنایی داداش داشت منتظره تهم راشی باش هیچ که جز من و تو عزبانی داداش پرچمم بغلم باشی بالاست هنه ورا تعنایی میرم تعنایی میگم تعنامی میرم لاشی ها پشتمون فردا چی میگن اگه بارون شا نباشی یا تعنا بشینم یه اگه به ما میرسه که نفر اول صفم اگه بگاهی بشی میرسم قبل این که دوتا بشه سه میرسم قبل این که خدا برسه لنگ میزنم وقتی وقت یا ببینم کم میخندیم رسم ما غیر معرفت نیم دوتایی میریم زیر سنگ سنگین یا با هم میتونیم یا با هم نه نمیدیم وسم هم بالا منبر میریم بهش عشق اشتبا کردن شبا دربند بند من سلامت جفتمون داشت که همه چی جز رفیق مفکرون اون که گشتمون دو با تو دوست دوستاش جاش تو دو دل جای مارش اونجاست.